أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون کس گمان می‌برد آن کسانی را که در جهاد کشته شده اند که آنها مرده اند، بلکه زنده‌اند نزد خدای خود روزی می‌خوانند. ما گروهی جوانی است یکی دارم اطال تا برداشتن بساط اشغال و اقامه نظام اسلامی آره برادرم امروز برتو جهاد مسلحانه فرز اینست همان گونه که دیگر بلدها برتو فرز اینست جوالی خاک گرده در یادون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 شهده در رای خدا،, رای خدا، کشتگان عزیز و ارجمن، رای کشتگان, رای و ارجمن، رای کشتگان رای گرامی رای و پاکیزه. رزی... آنان که در رای خدا به قتل میرسند مردگان نیستند، آنها زندگانند، و شایسته نیست آنها را مردگان نمیتند. آنها کسانیان که در رای خدا بقتل می رسند آره تنها در رای خدا یا اینکه که آزادگان در این بستره خاکی در سایه های قرآن زندگی کنیم و یا اینکه که عزیزان از این بستره خاکی بسوی سایه های امیمت های فروردگار ما در بهشتی بریم بشه ز خوش حرفانی شانی این از جهاد و دران شهادت میوفت است و زندگی برای شوح داده. ز اقبالم تی خوش حرفانی شانی تی خوش بفتار حکیمی شاب جان.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 يقاتلون في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بأحده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. برادران، إشغال جراني السليبي، برحبري أمريكا، إن خطي إسلامي رادر إشغال داران. و نظام پوشالی و فرسوده ای را در کابل اشغالی نصف کرده اند و اشغالگران جهت گسترش دایره نفوذ نظام مرتد و مزدور کابل بزل مسائی می نمایند تا نظام را از این تنگنا و فراخنای نقل دهند و پروژه های استقباری خیش را در این سرزمین و تحقق برسانند بزرگترین معنی که فعالیت های استقباری ایشان را فلج می نماید و از دائره نفوذ نظام فاسد و مرتد کابل روزانه میکاهد، امانا جهاد مسلحانه است. اتال در رای خدا، این یگانه هربیست که دشمنان اسلام را در این دیار قل و می نماید و نقشه های شومشان را نقش براب می کند. دشمنان با توسل به هر وسیله می خواهند، ذهنت جهادی را در از ملت مسلمان ما مخشوش سازند، اما نمی شود که حق را پوشانید و آن را در بستره زمان خفه نمود. جهاد مسلحانه دائرش روزانه پهندتر می‌گردد و فرزندان شور اسلام جبهات قتال و رویاروی مسلحانه را داختر می نمائند. زیر آنها با الهام از قرآن و سنت قتال را ضرورت حتمی و اینی میدانند. اشغال دیار اسلامی نجاست است که با جنگ و قتال نمی توان آن را زدود. برادران، فقه اسلام بر این اتفاق دارن که اگر کشور از دیار اسلام با اجغال کافران در می آید، جهاد بر سرنشینان آن فرض این می گردد. و اگر آنها، یعنی سرنشینان آن کشور از جنگ با آنها آجز بودن، دائره فرزیت پهندتر می گردد تا این که همه ای امت اسلامی را شامل می گردد. برادران، فقه ها بر این نیست اتفاق دارن که این قتال را جنگ و جهاد دفع می نامن و ان راز واجب ترین و جایب بر از ایمان به خدا و رسولش صلی اللہ علیه و سلم و روز آخرت می دانن این از فیصله اسلام در افغانستان و سایر کشورای اجغال شده اسلامی قتال تا برداشتن بساط اشغال و اقامه نظام اسلامی و این یک وجیبی ای عینی است که نمی‌توان از آن فرار کرد و عبادت نفلی نیست که در انجام دادان آن بنده را اختیار است آری برادرم، امروز بر تو جهاد مسلحانه فرض عین است همان گونه که دیگر عبادت ها بر تو فرض عین است و در پرپوییان نمی‌توانی تو سروی و یا بهانه‌ای را بتراشی امروز آتشی را کشغالگران صفاق و بی آزرم اسلام در کشورت افروختان و شولهای آن را حضر جامعی توانی بنگری بر توست که جهت خاموش ساختن آن کمر همت ببندی و با شجاعت و مردی و میدان کارزار داخل شوی و با سلیبی های کافر و جیران مرترشان پنجن عرم و با جز رب آسمان ها و زمین از کسی دیگر خوف نداشته باشی و با جز بر او بکہ سیدیگر توکل ننمائی زیرا او ترا کافی است و با یا و های کسانی که سازش ذلت و فرومایگی را تحت عنوان مصلحت بنام نام دیگری مسما می کنند گوش فرا ندهی زیرا بجز قتال هر حل کی پیشکش می شود یا ناشی از نفاق است و یا جبن و بزدلی و این دو چیز است برادرام که فرهنگ مومنان را مرد و مجاہد با آن آشنا نیست برادران شاید سوال کنی که احتمال کشته شدن در قتال و جهاد مسلحانه بعید نیست آره، اما آیا میدانی کسی که در راه خداوند کشته می شود او را چه اجر و پاداشی است در راه برچیدن بساط اشغال و فساد فرومایگان و برپایی خلافت اسلامی و به احتزاز در آوردن در رف لا اله الا الله و محمد رسول الله پس ای برادرم بعد از این مقدمه مختصر اندکی صبر کن و با من گوش فرا تا از شهادت در رای خدا و مقام والای شهید و منازل عالیه شهدا در بهشت برین و جایگاه و منزلت کشته شدگان در رای خدا با تو صحبت کنم شاید این سخن من و تو و سایران را تشویق نماید تا از این تنگنای زندان خیشتن را برهانیم و جهت نبرد علی دشمنان سلیبی آماده شویم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 تحقق عدل و نیکی و پایان بخشیدن به فتن و شر عمر محتوم و قطعیست و بدون توسل به آن امکان رسیدن به هدف ميسر نبوده و نمیتوان طریق را سراخ کرد که هم برپای اسلام را ممکن سازد و هم خطر تصادم محتوم میان جند الله و جنود الشیاطین را منتفی گرداند نظریه ادم حتمیت قتال یک تصور واحیز که محرکات این پندار بی بنیاد را نفاق جبن و گزدلی تشکیل میدهد و یکی از لازمه های لاینفقی قتال شهادت است. زیرا هستن کسانی که در این نبرد حق و باطل کشته می شوند. اما ای برادرم اینها شهداء اند. شهداء در رای خدا، کشتگان عزیز و ارجمن، کشتگان گرامی و پاکیزه، پس کسانی که در رای خدا برام یافتند، افتن، روانهایشان را در کارزار حق قربان می کنند. در حقیقت آنها را قلبهای اس نهایت گران ماید. و روانهای از نهایت فرخنده، و نفسهایس نهایت باکیزه. خداون می فرماید، وَلَا تَقُولُ لِمَي يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ، بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِ لَا تَشْعُرُونَ یعنی کسان را که در رای خدا کشتمی شون، مرده ما بلکه آنان زنده ولی ولیکن شما نمی فهمید. آره، آنان که در رای خدا به قتل می مردگان نیستند، آنها زندگانند، پس شایسته نیست آنها را مردگان نامید، و نباید در شعور ما مردگان به شما رایند، و نمی که در زبان هنگام نوت با آنها مردگان گفته شود، آنها به گواهی پروردگار زنده اند، پس باعث زنده باشند، آنها در ظاهر چنان چنانچی مشاهده می کشته شدند، همه حقیقت مرک و زندگی را این ظاهر نگری سطحی تعین بی که اولین نوژگی زندگی این است که در آن فعالیت رشد و گسترش باشد اما نخستین نوژگی مرگ، سلبیات، رکود و انقطاع است و آنان که در رای خدا و قتل می‌رسند، فعالیت آنها در پیروزی حق که به خاطر آن کشته شدند، فعالیتی از مؤثر و فکری که به خاطر آن به قتل رسیدند و در این بستر خاکی در حال گسترش است و پس از کشته شدنشان اثر پذیری دیگران از آنها نیرو آفته و امتداد می‌یابد پس آنها پیوسته عنصر فعال و انگیزه مؤثری در ساختار زندگی و رهنمودی آنند و این نخستین جوژگی زندگی است و بدین اساس آنها در دنیای انسان‌ها زندگانند اما آن شهدای زندکی ها اند آنها کسانی اند که در راه خدا به قتل می‌رسند آری تنها در راه خدا دور از هدف و غایت غیر از خدا در رای دین کان را برگزیده است تنها و تنها در این را، نه در راه دیگری و نه تحت شعار دیگری و نه با شریک نمودن شعار دیگری پس آنها آن شهدا و آنها را تنها و تنها جهاد در رای خدا ایمان با او و تصدیق بر رسولان او بیرون میکند این از جهاد و در آن شهادت نهفته است و زندگی برای شهدا است خداوند میفرماید ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 تا به آغوش باس و قلبهای مالامال و سرشار از ایمان به استقمال شهادت و تن ندادن به زبونی و زلت بشتابند و هرگاه آنان مجاهدانه به شهادت برسند بزرگترین پاداشت را در بدل این زندگی دنوی دریافت می کنند خداون می فرماید اِنَّ اللَّهَ اشترَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ انفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ فِ وعداً علي حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بأهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم يعني خداوان ما الحاوى نفسها امو من رنر خلداري نموداً بارين كي بإشان بهشتاس عنها در رأي خدا مي جنگاً مي كشاً وكشتا مي شوان اين وعداي حقاً كي خداوان در توراة إنجيل وقرآن نموداً و کیس وفاک کننده تر به احدشت از خداوند، پس به بایی که با آن داد و سطوت کردید، شادمانی کنید، و آن همان پیروزی بسا بزرگ است. برادرم، به این آیت مبارک خیره شو و اندک در رنگ نما، بنگر این وعده راستین پروردگار توست،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 و غبار زلت و فرومیگی را از خود زدوده و تاج آزادگی را بر سر گذاشته و با جز بندگی رب آسمانها و زمین به همه بندگی کفر ورزیم و این اعلان کفر به خدایان ساختگی را در جولانگای قتال به نمایش بگذاریم از حبو حریر رضی اللہ عنه روایت شده که پیامبر صلی الله علیه و وسلم فرمود قسم به ذاتی که جانم در دست او است هیچگاه کسی در رای خدا زخمی نمی‌شود.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 و اگر خداوند من را در جنگ با کفار حاضر دارد خواه حدی چی خواهم کرد وقتی روز احد فرار رسید و مسلمانان پراگنده شدند و گفت خدایا از این عمل اینها یاران وای می نهایت در پیشگاهت عذر می طلبم و از که آنان کفار می دارن بیزاری و بعدن پیش کرده و در را به سعد بن معاز برخورد نموده و گفت ای سعد بوی جنت و رسیدن به خدای نظر را از سوی احد می بینم سعد به پیانبر صلی اللہ علیه وسلم گفت ندانستم بعدن چی کرد انس می گوید خورا در حال یافتم که در جسدش اشتاد چند ضربه شمشیر نیزه و تیر بود و کسی يجوز خواهری هو کور از انگشتانش شناخت یت کس نه توانه سورا بشناسد انس میگویت که به گمان من این آیه درباره ی وای و کسان چون هو از شهدای نازل گردیده است من المؤمنین رجال صدق ما عهد الله علی امام بخاری در کتابش از محارسه بنت سراقه روایت میدارد که نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده و گفت ای پیغمبر خدا ما از حال حارسه آگاهی داری حارسه در اثر صابت تیر ناملومی در روز جنگ بدر به شهادت رسیده بود. هرگاه در جنته سبر پیشگیرم و اگر غیر ازینه است با شدت ناسبری و گیریه نمائم. آن از رت صلی اللہ علیه سلم فرمود ای محارسه. او در جنته است و برای پسرت فردوس علا رسیده است. آره برادرم چیگونه بایاد جنت غمها و مصائب فراموش می شود و آنان را بر تکالیف شکیبا و مشقات سابر می نمود. نسائی در کتابش عزرت عبی امیره رضی اللہ روایت می کند که گفت رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم فرمود کشت شدن در رای خدا را از این که همه ای اهل شعرها و روستاها تابع و فرمان بردار من باشند بیشتر دوست دارم. ترمیزی نسائی و دارمی عزرت عبوری را روایت می کند که رسول خدا صلی اللہ علیه وسلم گفت شهید از کشت شدن جزب اندازه آنتی شما از فشار دو انگوشت احساس می نمائید احساس نمائید. ابو داود از عبد الخیر بن ثابت ابن قیس ابن شماس بن خلص پدر و جد او روایت می دارد که گفت زنی که ام مخلات نام نقاف نقاب زنه از پیغمبر صلی الله علیه و سلام آمد و پسر خود که در رای خدا شهید شده بود پرسان نمود برخی از صحابه گفتند خود را اینقدر پوشانده ای و آمدی از پسر خود فرسان میکنی و ای گفت اگر پسرم را دست داده ام و قارم را دست نداده ام خدا صلی الله علیه و سلام برای آن فرمود پاداش و اجر دو شهید برای پسرت است زن گفت چرا آن حضرت صلی الله علیه و سلام فرمود چون او را اهل کتاب کشته است در این حدیث اشاره به وجوب جنگ با اهل کتاب شده این که هر کی با آنان بجنگد مزد چند برابر را خداوند برایش می‌دهد برادرم چه چی چیز تو را مانع می شود که خود را از این نعمت های الهی محروم می کنی او در کنج ذلت خمیدای آیا اشغال کشورت کافی نیست که تو را وادارد تا شمشیرت نیام برکشی و به سوی میدان نبرد بشتابی؟ آیا به زلت و فستی تن میدهی و در زیر چتر نظام فرسوده و مرتد کابل حیات بسر میبری؟ آیا از نقشه و دسائس شوم سلیبی و سردمداری آمریکای مجرم جاهیلی؟ آیا از زندان بگرام و قندهار بیخبری که در آنجا با ورادران و خواهران چی صورت میگیرد؟ آیا, آیا جهت بفساد فساد کشانیدنی قشت جوان ما از, از فایش خانهایی که در شهرها برفا کرده ان ناآگاهی؟ آیا از این آیا که نساب, نساب تعلیمیت را از بنیاد تغییر دادن تا نسل جدید افغانی یک نسل بیپروه و لادین به بار در غفلتی؟ آیا از این که نظریات منافی با اساسات اسلام را از بلنگوها و رسانه خبری خبری، همچو دموکراسی و, و غیره در ملت تزریق می نماین بیخبری، اگر از اینها بیخبری، پس باید بدانی که این شمعی از اهداف شوم و دشمنان سریبی در افغانستان است؟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 آره کابل، آیا می شود به تلعبیب تبدیل شود؟ آره، اگر من و تو با, با حانه آی مختلف و با شعرهای رنگارنگ رنگ از جهاد فرار نماییم و زلت را به سرفرازی ترجیح دهیم، پس برادرم برخیز و ایک بار دیگر این سرزمین را با آتش تبدیل نما و همماسه نیاکان مومنت را که دیروز اساکر انگلیسی را در شعرهای عبریشم تارمار کردن و با جز دکتر برایدن که جراحت برداشته بود، هم آره این هم ما سر را یک بار دیگر احیا کن و برای اشغالگر تفهیم کن که ما پرندگان ای نیستیم که با زلط کشانی داشه ایم من المؤمنین رجال و ما عاهد الله علیه فمن من قضانح بهو و من هم من ینتظر تبدیلا از مؤمنان کسانه اند که راست کردند، اهد و پیمانی را که با خدا بسته بودند. پس از آنها کسی پابند به با اهد مند و عملی کرد یعنی شهید شد و کسان دیگر به انتظار به سر می برند و اهد و پیمان خود را بدل نکردند. زی فراخت ای برادر دیدینا قرار دارم Zidu di dahun fikiran, jikalau fikar darah, zifirah hati berada, dilihat karada. Zidu di با جوانی پاکتینک با شهادتت ببالم با تو افتخار دارم بو بر ایس با پیامم با جوانی پاکتینک با شهادتت ببالم بتو افتخار دارم بشهید کربلا یم زمنی حج سلامم بنا سوکی اسفراخشت دینی دردورم بشهید کربلا یم Din hadin salam, birasa kias firasqash, din daqdar daram, di khusyaban awjawan, di syarif dua diman, kisalahh چه خوجابان و جوانم، دی شریف دودمان، کسی لاهش و سودانم، کرما شعر دانم، سخنی کذف نبود که به سوء خو است خوانم. شران دردي جران زفراق ياردرم سخني گزافت نبوات كيب سوخ وسخانم چشران دردي جران زفراق ياردرم زفراق كربلا لم بملامتم مگیرت شررم از اونم آید که بدل شرار دارم زیفی راه گربی نالم بملامتم مگیرت شررم از اونم آید که بدل شرار دارم بی روی برادری من به خودات می سپارم بی روی برادری من به خودات می کی برادران درین ره همه جان سپار دارم اگرد برادرم بشهادت تنالم جز مارگ فرش دی بال با خدا کاردارم اگر ادب را داری من بشهادت تنالم جز مارگ فرش دی بال با خدا کاردار زی فراخت ای برادر دیلی ناقرار دارم زی دودی دخون شانم جگری فی گار دارم زی فراخت ای برادر دیلی ناقرار دارم Dudikun fi syam, jikari fi qar